جالسی 39 اول اتفاقی است اول فکر می‌نم، پس توی ۱۳۴۰ ماه سی آموزش‌الیه اموزالیه سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الله علیه و سیده و نبیه محمد و اهل بیت تاهرین المقسمین سی مبقیه الله العزین. روحی و ارواح بالآلمین اللہ با تأکل و خدای متعال و تحصول به خیامبر گرامی و اهل به تطهار علیه و سلام بحثمون رو آغاز میکنی. ما در این بحث بودیم که تزاهم رو با توجه به شکل های مختلفی که داره در نظر بگیریم و صورت هایی که در اون وجود داره لحاظ بکنیم تا بتوانیم مجموع قواعد مربوطه به این بحث رو استیاد کنیم خب در تلقی رایج گایی قاعد تبیر میشه به اینکه که قاعده اهم و مهم رو ما در نظر بگیریم اما با توضیحاتی که ما وارد شدیم می‌بینیم که یک قاعده نیست مجموعه از قواعد و همینطور مجموعه از سیاق تعبیری مختلف داریم که بعضیش به هم نزدیک میشه در سیاق تعبیری که مربوط به تخییر بین تضاهم یا تخییر بین دو مسلحت متساوی بود یا تضاهم بین دو مسلحت بود تعبیر رو کردیم وجوب و لابدیت تقدیم اوجب بر واجب تقدیم احمل مسلحت این تقدیم اقبل مسلحتین خوب اینا رو بعد نظر قرار دادیم تقدیم اکبر المسلحتین رو عرض کردیم که بعضی ارز کردیم به مسابقه سیقه تعبیری میگیرن برای احمل مسلحتین اما به نظر میرسه که ما میتوانیم این قاعده رو به مسابقه یک شاخصه فرعیه برای این مورد در نظر بگیم رضا وارد تحلیل شاخص مسلحت کربی رو مسلحت اکبر شدیم و وچه ترجیح رو در اون حامد نظر قرار دادیم بحث مورد دیگه بود بحث قاعده اعظم و نفعن این تقدیم پیدا کنه تقدیم اعظم و علل اقل نفعن خب اینجا بودیم یه مقداری وارد صحبت شده بودیم خب اینجا ما یه تفاوت باید مفهوم در واقع تفاوت مفهوم نفع با منفعت با مصلحت رو در نظر بگیریم خب این مقوله مقوله بسیار مهمیه ما مفهوم مصلحت رو چگونه به کار میبریم مفهوم منفعت رو چگونه به کار میبریم خب مفهوم مصلحت و منفعت در واقع در برخی از تعابیر و کاربردها دو مفهوم مزبور اینا یکسان تلقی میشن و ممکنه در عرف در واقع عمومی به مسابه در واقع یک مفهوم به کار میرند اما در فضای کنونی در فضای بریجه فارسی در ادبیات فارسی که اون دقت عربی درش نیست اما در تعابیر فقهی این دو مفهوم مثلت و منفعت دارای تفاوتند و یکسان تلقی نمیشند در ادبیات قرآنی خب مفهوم خیر به کار میره همینطور که مفهوم خیر و ضرر به کار رفت با ضرر کار نداریم این نسبتشون چیه؟ منفعت چیزیست که برای نفعی برای مردم داره مسلحت هم یک مسلحتی داره به سود افراده اما مصلحت در واقع از یه جهاتی در واقع تفاوت داره یکی از وجوه تفاوت چیه؟ اینکه مفهوم مصلحت می تواند با ضرر دنیاوی هم فلسه سازگار باشه، قابل جمع باشه در واقع و انتصال هر دو ببشد. جمع شدن هر دو در یک جا امکان داره. مانو به تعبیر دیگه به تعبیر دیگه مانع جمع نیستن. جی. To... So... To... Now... ب... در واقع امکان جمع اینها مستاقاً خب تاثیر داره. امکان جمع دو مفهوم در یک مستاق به این معنوس است که مستلزم اینی که در واقع نمی توانه مسلحت با ضد ضرر خلاصه به یک معنا باشه چرا؟ چون که اگر مسلحته اگر منفعت منفعته مقابلش ضد منفعتو ضرر دو مفهوم متضاد دن اگر مفهوم مصلحت با مفهوم با واقعیت زرر قابل جمع باشه نمیتوانه با ضد اون یکسان باشه با ضد اون در واقع به یک معنا خلاصه باشه با اون هم معنا باشه بنابراین این مشکل رو ما داریم که این دوتا تفاوت داره نکته حالا این تعبیر زرد دنیاوی رو ما گفتیم افتاده هم میگیم با مفهوم زرد تفاوت دومینه که از این جهت مسلحت میتوانه ناظر به امور اخروی هم اخروی ترسیم بشه در واقع اگر ما فقط با نگاه دنیاوی نگاه کنیم که نبگیم منفعته اما با نگاه به آخرت مصلحت با منافع دنیاوی میتواند ناسازگار باشه و خلاصه با هم جمع نشن با خلاصه متفاوت باشه متمایز از منافع دنیاوی باشه این دوتا تفاوت دارن خب در امور فقهی این تفاوت توجه وجود داره که مصلحت و منفعت یکسان تلقی نمیشن و تفاوت اونها باید لحاظ بشه خب پس بنابر این برگردیم به اصل قاعده تقدیم تقدم اعظم و نفعن علل و نفعن خب ما اینجا نکته دیگه تحلیل محتوایی بخوایم بکنیم. این رو هم فراموش نکنیم. حالا در ادبیات قرآنی از کردیم مفهوم خیر به کار میره که می‌توانم در واقع این مفهوم هم می‌توانم تا حدودی به مفهوم منفعت نزدیک باشه. هر چند با مفهوم مصلحت هم سازگاری داره البته اینو عرض کنیم که ما وقتی گفتیم این دوتا تفاوت دارن مرادی نبود که مصلحت و منفعت مصالح مشترک ندارند مصلحت و منفعت می توانند در مصادیق مختلف قابل جمع باشند اما تفاوت اونها در برخی از مصادیق نباید نادیده گرفته بشه خب این نکته در مورد مفهوم خیر هم میتوانه باشه حالا باید دید که با بحث ما کجا؟ سازگاری داره نداره اما مفهوم خیر هم برای مفهوم دیگه حالا ما تمرکز رو میخوام روی بحث منفعت داشته باشیم چون که این قاعده مطرح شده که به هر حال این مفهوم در واقع این قاعده رو ما باید بر این اساس تصویر بکنیم که میگن اعظمون نفعن باید علل علال اقل نفعن مقدم بشه خب این بیانگر چیه؟ بیانگر این است که ای تفاوت کمی میان خلاصه دو مورد لحاظ شده است اما از اون طرف می توانیم بگیم که مصلحت یا محدود به مقوله کیفی نیست کمی نیست مصلحت می تواند در امور در واقع کیفی هم صرف پیدا بکنه می تواند در واقع حاوی بُعد جمعیات جنبه جمعی کیفی باشه اما برخلاف در واقع منفعت که یه مقدار شاید بگیم در واقع که در واقع جنبه کمی درش شاید پر رنگ تر باشه مقوله در واقع منفعت تا حد زیادی بعد کمی رو بیان میکنه خب اگه اینطور باشه این قاعده بیشتر به این میخوره حداقل اگرم اعم باشه در اینجا مفهوم منفعت در واقع حاوی بعد کیفی هم خلاصه لحاظ بشه اینجا حداقل این تقدیم اعظم و نفعن علل اقل نفعن یا اکثر و نفعن علل اقل نفعن خب پس در واقع محدود میشه این محتوام بحث رو محدود میکنه این سیغه تعبیری مستلزم عدم لحاظ امور اموری که خلاصه تفاوت کیفی در اونها لحاظ می شود چون که این مقوله این قاعده در واقع زبان خاصی داره زبان این قاعده و محتوای این قاعده محدود و ناظر به مقایسه کمیه بین موارد مختلفه بنابراین یه سری امور از دایر بس خارج میشه خب اینجا پس نتیجه که بخواییم بگیریم نمی توانه این قاعده این قاعده اهم مبوهم باشه به تعبیر دیگه این قاعده صرفا می توانه بیانگر در واقع نصابی کمی برای قاعده اهم و مهم باشه قاعده تقدیم اهم بر مهم خب چرا؟ چون که قاعده اهم و مهم کمی صرف نبود در نتیجه از هیته اون روه محتوایی این قاعده تقدیم اعظم یا اکثر نفعن بر علل اقل نفعن محدود تر از قاعده فلسفه هم و مهم و تقدیم همبار مهم خواهد بود نمیتوانم این اون باشه و به تعبیر دیگه در واقع میتوانه یه شاخه از اون محسوب بشه از فروات اون قاعده تلقی خواهد شد پس این هم این قاعده اثبات این قاعده خب یه جاهای روشنه در واقع وجه حا این قایته چیه این که یه موردی در واقع یه نوع بیانگر اولویت محتوایی است ببخشید اولویت خاصی است حاوی در واقع معیاری معیاری است که عرف انسانها اون رو میپذیرند به شرط اون که در واقع از جنبه دیگری اهمیت خلاصه به عقل و نفعن تعلق نگیره اگر جنبه دیگری خلاصه نباشه که اولویت داشته باشه اهمیت به عقل و نفع تعلق بگیره خلاص این رو میپذیرند در واقع به تعبیر دیگر صرف در واقع ترجیح کمی میتوان مقتضی ترجیح باشه خب حالا این اقتضای ترجیح آیا ضرورت داره اقتضای ترجیح اعم از وجوب ترجیح و در واقع بگیم استحباب ترجیح خب پس برمیگرده در نتیجه اون از اعظم و نفعن موقعی برد بر اقل و نفعن مقدم بشه که یک ضرورتی باشه کشف ضرورت تقدیم در تقدیم اعظم و اعظم و اکثر و نفعن در باید به صورت مستقل خلاص استخراج بشه باید به صورت اجتهادی اثبات بشه هر چند در واقع اقتضای این ترجیح از ذات تفاوت کمی میان اونها خلاصه قابل استفاده است اما ضرورت ترجیح مهمه مثلا ما علیه مثال عرفی بزنیم دو تا برادرم یکی رو شما بیشتر دوست دارید آیا به او هدیه بیشتری باید بدید؟ نه می توانید بدید می تواند ندید خب بعد امور دیگه هم باشه در واقع وجه و کیفیت تقدیم از این بنظر بعد دیده بشه اختزای ترجیح عم از ایناست در نتیجه ما بدون ادله اسباتی بدون اقامه عدله اثباتی برای ضرورت ترجیح و تقدیم اعظم نفعا بر خلاصه اقل و نمیتوان ضرورت اون رو در واقع اثبات کرد نمیتوان بدون خلاصه اثبات ما نمی توانیم این رو بپذیریم اقامه اثبات، عدل اثباتی برای ضرورت امریز امری، نپذیره و بدون اون خلص ما نمی توانیم و بدون دلیل این اثبات رو این توان ضرورت اون رو پذیرفت و صرفا میشه. استحسان در واقع ادعای بی دلیل این مورد متکیه بر زنون و استحسانات عقل در واقع شبه عقلی بله اثبات ضرورت این تقدیم می تواند با استبلال های شرعی یا عقلی قطعی انجام بگیره این معنی اینیست اه خب اه این مسئله خیلی مهمه بعضی ها صرف این که تا یک ترجیحی میبینند بر این مش میرن که کعنم اون ضرورت داره نه یه ضرورت عقلی اگر خواهد پیدا بشه ضرورت عقلی میتواند خلاصه از طریق قرار گرفتن در کنار خلاصه در با از طریق تطبیق قاعده در واقع ملازمه عقل و ما رو به ضرورت تقدیم انفع و نفعن برسانه اما باید واقعا اون ضرورت اثبات بشه خلاصه ما رو به این بخواب برسانه و مقدماتش مهیا بشه یک نکته اینجا هست که چه چیزی که اهمیت داره؟ آیا موارد قابل تمسک هستند یا نیستند ما باید به فائل شناسای این مسئله تو منفعت توجه کنیم من یک مسئله مهمی است که ما ببینیم در واقع چگونه نگاه بکنیم این تحلیل محتوا یک مسئله بسیار مهم بوده نسبی و اضافی بودن در واقع منفعت پس ما گفتیم که مصلحت متمایز از منفعته اما برخی از منافع می توانند به مسابه در واقع مسلحت تلقی شوند به تعبیر دیگه مواردی که مواردی از مسلحت به از منفعت که نمیتوانند مصداق مسلحت تلقی شوند از بحث در واقع باید کنار گذاشته شوند. چرا؟ مواردی رو ما داریم که همونطور که ارشد گفت ممکن به با ضرر باشه یا ببخشید منفعت داشته باشه اما مصلحت نباشه. خب این یه مقوله بسیار مهمه. بحث ما ناظر به مواردی خواهد بود که مصلحت باشند. در مجموع اون مسادی از بحث ما هستند دیگر موارد چی می توانند بحثشون متفاوت باشه خب بعضی جاها در واقع منفعت خلاص بیشتر همواره این گونه نیست که خلاص ما خلاصه که منفعت بیشتر بر منفعت ضعیف‌تر مقدم بشه بر منفعت کمتر مقدم شود چرا چون می توانیم بگیم یه جاهایی اون منفعت شرعی نیست شر در همه موارد خلاصه منفعت رو منفعت رو قرار نمیده تا نوبت به مقایسه منفعت کمتر و بیشتر به پردازی. به تعبیر دیگه یک جاهایی را منفعت کمتر از مصلحت بیشتر برخوردار است چرا که در واقع معیار مصلحت می فراتر از در واقع منفعت تلقی بشه در نتیجه نمیتوان مفهوم مصلحت رو به مفهوم منفعت تقلیل داد شما یه چیزایی رو میگی منفعت داره به اینکه موارد دنیاوی منافع دنیاوی رو در واقع محور توجه قرار بدیم به ویژه منفعت دنیاوی لزومی لزومن در دایره مساله مدنظر شاره نظر و قابل قبول برای شاره قرار نمی گیرند. بستگی داره. خب حالا این میمقام. در واقع بسیاری از بله، بحث بس است. الحمدلله هم درست شد. راستین. اسکرین رو چرا منفعت رو خب به معنای نفر مادی رو گیریم یعنی شما آمدید معنای عرفش هم مثلا در نظر بگیریم حتما دوزیما منفعت و منفعت مادی نمیتونیم در نظر بگیریم بله تو عرف معاملات هستی به هزن مثلا منفعت مادی رو میشدم تو عرف معاملات ولی شما الان در یک بقص اصولی داریم و انجام میداریم نفر رو همه میتونه کار کاروه ها تو قرآن گفته مثلا مشروب بخوری مثلا این چیزا نفعش چون شمیع... یا زررش بیشتر از نفعشه یعنی نفعش کمتره خواه میگم یعنی به این معنی نیستش اگه مثلا ما منفعت رو به مقاستش مصابیه با مسلحت بیاریم مصرافی با مسلحت نمیگیرم هنگی مساقی و مسلحت نگرفتیم باید بیاییم مثلا بگیم منفعت منظور ما از منفعت اینه. منفعت فقط دنیبی اگر مثلا اونو یعنی وقت پیت بزنیم مشخص کنیم اصطداح رو که منظور ما منفعت چیه بعد من تازه از موقع چون حالا وقتی بخار وارد بحثشون یادو که واقعیت جامعه بریم بعضی از این موقع همون منفعت دنیایی یه جوری جعل شده که اصلا این منفعت روی ما یه منفعت اخربی در نظر داریم که فکر میکنیم در اول کار این منفعت اخربی راجعه بر این منفعت دنیاییه ولی که وقتی که ما شدیم این منفعت دنیاییه اتفاقا راجع برون اون افرویه به ظاهره که تو نظر ما هستشه چرا؟ چون مثلا اینو قوام جامعه به این هستش که مثلا به خاطر همون مصلحت باید این منفعته رو باید این منفعته رو برون تقدم برایش قاعد بشیم خامنیم یعنی منفعت رو میتونیم یه مقدار اگر مثلا بیای مهناش رو با مصلحت هم افق کنیم میتونیم کاشایی نور استفاده کنیم ولی اگر نه نخواییم استفاده کنیم بعد بیمیم بیم مثلا این نمیشه مثلا این منفع چون فقط بار معنایی مثلا مادتی داره یا خیلی کم برای مثلا معناییت ممکنه استفاده بشه به خاطر این مثلا به یه جای عموم خصوص من وجه تا ز داره چون بعض مخالفه دیگه وقتی مخالف باشه بعد اون خصوص من داره که اون هم هم حتی نمیشه تشکر من برداشتم اینه که از مجموعه فرماشته که لا لایه فر... فرماشت فرماشته فوقپا و دیدم اینکه مفهوم مصلحت در ادبیات دینی داره دو مصداق و ناسواب لحاظ نشده در ادبیات حال دینی و در واقع بگیم عربی در ادبیات عرب داره دو نیست اگر چیز مصلحت بود یعنی خوبه ثوابه اما مصلحت نداریم مسلحتی نداریم که ناسواب باشه اون بحث هرچند اون در واقع مصلحت مثلا مرسل اینا وادی بحثش اما مفهوم منفعت یه جایی میگیم آقا منفعت داره اما خلاف مصلحته. در ادبیات عرب خلاصه داره دو مثلاق مسلحت هامیز و داره مقصد هامیز هم تصویر میشه یه جای منفعت میبریم در واقع سود حاصل از ربا یا سایر خلاصه سودهای حرام رو میتوان از سنخ مفا. منافع حساب کرد منافع ماددی یعنی مفهوم منفعت بر اونها صدق میکنه اما کسی خلاصه به اینها نمیگه مصلحت اما اینها از مسادیق مصلحت تلقی نمیشن اینو اون نمونه بود یعنی الان ما به اون سوده حاصل از ربا یا سایر سودهای حرام مفهوم خلاصه منفعت بر اونها صدق میکنه در این موارد مانعی برای صدق این مفهوم نیست مفهوم منفعت چه اشکالی داره برای اونها صدق بکنه میگم من سود بردم من منفعت جستم در واقع ارتكاز کنه به تعبیر دیگه جعل میشه ما بحث رو مجازی به کار ببریم معنای حقیقی این و, و اکثر و یه درست وقتی قاعده این باشه پس میتونیم اینجا این نفع رو بگیم اینجا این نفع کمه مسلحت نداره اون نفع زیاده همون مسلحت داره است میریم خواب اینجوری بگم وقت درسته مهمشه بعدی توی هم مسلحت هم اگر شما خواستیم یه, یه بار دیگه به فرمایید چی فرمایید اگر شما ما دید مسلحت رو دیگه تشکیکی نگرفتی اومدید متواتی قرار دادید یعنی نس... گفتید مسلحت اینه و, و غیرش مسلحت نیست یعنی اومدی معنای مسلحت رو یه تشکیکی در نظر نگرفت مثل نفرانم این که دو تا است اصطلاح اما اگه منفعت رو و مسلحت رو دفتید تشکیکی در نظر گرفتی اینا رو میتونی مثلا در نظر بگیم اگه آقا این مسلحتش بیشتره مثلا استفاده میشه تو این مسلحتش بیشتره یا مثلا اون منفعتش بیشتره اینجا هم افق میشن اینجا میتونی مثلا استفاده بشه حالا در اون سر لفظ نیستی ولی می‌گم یعنی اگر به چه چیز بشه ولی این اصطلاحات فشنگ مشخص بشه که مراد ما از این اصطلاحات چونه اصطلاح مفاهیوه کار نیبرید دیگه اون جواب به مشکل نخوریم. اگر مثلا ما منظور من نفع هستش به منفع تشکیکی و به این مثلات نید منظور ما من نیست. دو من به نظرم از, از تشکیکی بودن شما استفاده بدی کردید نگاه کنید مفهوم در واقع مثلت و منفعت هر دو می توانند تشکیکی باشند در واقع این دو از ماهیت تشکیکی بخوان برخورداروشن یعنی چی؟ یعنی اینکه یعنی مصلحت مسادیق متنوعی دارد که برخی از اونها مصلحت بیشتری دارند، پررنگتری دارند. چونان که مفهوم در منفعت هم همینطوری تشکیکی بودن منفعت یعنی چی؟ یعنی مستلزم اینه که برخی از مصادیق اون مصادیق اون دارای در واقع انفعند و برخی از منفعت کمتری برخوردارند او این چه ربطی به هم داره این در واقع تشکیکی بودنه این دو مفهوم مستلزم یک ثانی اونها نیست چرا چون این تشکیکی بودن اینها جدا جدا لحاظ شده بود و ربطی به هم نداشت ما میگفتیم آقا یه مستاق قوی داره یه مستاق قوی داره یه مستاق ضعیف دوستان صدا رو دارن ای بس. بس. این ده دقیقه یک بار سطحه تبلت میگه من باید حواسم باشه این سطحه نره الان صفحه رفت شاید دشار مشکل شده باشه نوعه الان مسلحت داره تشکیکه خوب باشه در واقع یعنی یک مسلاقه مسلحت مش... بیشتره برخیش هم چیه برخی از موارد اون کمتر مثلت داره درست از مثلت کمتر برخور دارن خب تشکیکی بودن منفعت هم همینطور مستلزمه در واقع اینه که برخیش انفع هم برخی منفعت کمتری دارن خب باشه. حالا یه چیز دیگر رو در نظر بگیریم و اون اینه که طبق فرمای شما حرف درستی هم از لاوله هرس ما بود برخ مفهوم مصلحت اعم از مفهوم منفعت یعنی چی؟ یعنی مسادیقه برخی از مسادیق منفعت میتوانند مصداقه مفهوم مصلحت باشند اما بلخی از اونها به خاطر صدا رو صدا رو دا... ندارید صدا صداتون صدا من دارم الان شما ها نه من شکرم قرض شد این ایت رو دوبار از توی ایتا من زدم الان دوباره انگاری گاری وارد من یه چند لحظه خارج شدم که کلاً ببخشید و این سولفمنت خلاصه ببخشید خلاصه با هم تماس می گرفتید این تو ما واسه کلاً درست شد آقای صدای داره اما نوروزی بله فکر کنم الان اینم چیزای عجیب بوده. واش زمین دوتا دو تا شد من این ایت ها رو خواستم خاطر چند یه لحظه دو زدم دو تا شد بایده. من شما اس کنم ببینید این فرمان شما رو من اینطوری نظر میگیرم که اگر بخوایم این تشکیکی بودن رو لحاظ بکنیم ببینیم اختزای تشکیکی بودن چیه اینه که در واقع هر کدوم از اونا مصادیق خاص خودشون رو دارن خب اما نسبت این دوتا چیه نسبت مفهوم مصدر اینه که اهم از منفعت یعنی برخی از مصادیق منفعت میتوانن مصداغ مفهوم مسلحت باشن اما برخی از اونها به خاطر در واقع برخورداری از و تلازم با مفصد مفصد آمیزن و به خاطر مقصد آمیز بودن از دایره مسلحت خارج می شوند و برخی از مصادیق چی منفعت این ربطی به بحث چیز نداره این معقوله ربطی به تشکیک بودن نداره این یه مس... مسئله مستقله در واقع تشکیکی بودن ربطی به این معقوله نداره بحث مستقلی از بحث در واقع نسبت مفهومی اونهاست من این رو متوجه نمیشم اه... که شما این رو با هم بیارید و اون رو نتیجه بگیرید که ببینید الان یه سری مسادی داره مسلحه شاید موضوعان تونستم برسونم شما وقتی منفعت رو به این معنی یعنی منفعت رو اهم از دو مادی و معنی مید یعنی ای آقا مثلا آقا این ایش بیشتر ایش از اینه وقتی این این بیشتر از این هست یعنی چی؟ یعنی بیشتر ایست این تقریباً لازم هم. یا اگه به این معنی رفتی من فتر رو یعنی اهم از مادکی اون معنی رفتی. یعنی این, این از این بیشتره. مسلحت این کار از این کار بیشتره. مسلحت مثلاً افس نظام نظام بیشتر از اینه که بخوام من مثلاً چیه خواهم؟ بخواهم خیل بگیرم آن خیلی مثلاً بخوام الان حمله کنم مثلا به یه جایی خیلی از این مثلا کمک های بیشتری بخوام بخوام مثلا برام زید لشکرکی کنم برام خدسکیم کشورم خب مسلمانه دیگه از ما هم داد باید بریم کمک کنیم ولی مسلحت این نیستش درسته مسلحت رو اینجا منفعت بگیم یعنی که منفعت ما یعنی این چه منفعتش برات بیشتر هست؟ تو منفعت منظورم اینه تو گوش وقتی وارد شدم اینا دادن معانی مادی داره ذهن رو مثلا اینکری میکنه که حد اه... اه... اه... منفعتش اما اگه به معنای جفتش گرفتی یعنی که هر مادی هر معنوی اون منفعتش کمتر نتیجیه یه منفعتش کمتره برای ما اون منفعتش بیشتره یعنی چی یعنی منفعتش برام بیشتره برای یعنی خدامنم وقتی یه چیزی رو ارمو خواسته جعل کنه و ندم مصلحته داره یعنی چی یعنی منفعتش برای شما بیشتره من چیزی که منفعت داره رو برای شما جعل کرده منفعتش بیشتر برای شما کرده من یه شراب رو جعل کردم به خاطر اینه که منفعتش بیشتره و اینم مصلحته داره من داره اینو بودت داره اینو مرهمیینی بای این حقا وسیقی دارن شکه از روی معنا خب این بحث متمایز از اون بحث تشکیکی شدن شد. این دوباره اون اشکال قبلش شده. یعنی فرمای شما دو تا اشکال داشت. یکی این که فرمودید چه لزومی داره منفت رو ما به منفعت مح... مادی محدود بدانیم. درسته حالا این دوباره بیان شما برگشت به اون بحث. که می‌فرمایید چه لزومی داره منفعت رو محدود به منفت مادی بدانیم. بلکه خلاصو می توان منفع مفهوم وفت رو اه ما هم بگیریم و شاید از قرآن میارید از منافع دنیوی و اخروی بگیریم درسته؟ در قرآن هم منفعت شراب نخوردن لحاظ شده درسته هم این مورد شما این بود دیگه من به نظرم مفهوم مسلحت حداقل اگر هم برفرض بتوان برفرض که بتوان مفهوم منفعت رو در باره در واقع مصادیق اخروی هم به کار ببریم ما اما مفهوم مسلحت در مصداق نداره و این روزی دو مصداق نداره که بگیم یک مثلتی داریم که خوب است یک مثلتی داریم که بده اما مفهوم منفعت داره دو مصداقه خب همطور که ما برای مثلا فضای منافع مادی گفتیم خب اما اون منافع در واقع منافع اخردی کاملا چی هستن؟ مسئله ها میزن؟ و هیچ صدهی از مفسده در اونها تصویر نمیشه با این که مشکل نداره اینی که ما محل نکردیم اینه خارج نکردیم عرض کردم اهمه مفهوم دو دومصلاق خوب و بد نداره دومصلاق سواب و ناسواب نداره اما مفهوم منفعت اهمه شون فعید منافع اخراوی هم بگیم مثلت تو اشکال نداره اما برکه منافع دوریوی من میتوانه خواهی مفسدی باشه که مال از ضدق باشه یا مثلحت قالب باشه منافع دنیوی می توانند در واقع سبب یا سُطوحی از مزار و مفاسد رو خلاصه در خود داشته باشند یعنی نه تنها می توانن زرر ضرر باشن می ناخالص باشند. ناخالصی از سنخ در واقع مزار رو در خود داشته باشند اون بحث جدا بلکه میتوانند با در واقع مفسده جمع شوند و مفسده آمیز باشند همه با مفسده باشند اما اگر چیز مسلحت بود دیگه مسلحته مس... مسلحه هست باز. باز درم هم قابل جمع ندیه ما تو مسلحت دا... هم من اینه دیگه مسلحت مادی مسلحت افرادی اینم میشه برای شد خب باز. اونجا دیگه اه... حالا باید ببینیم ورف عرب الان این قصد فرمان شما بهتره که شما اینجوری بگیرید نه ببینی این نروم میشه یه اشکال مستقل یه اشکال ثوم میشه خست اینجا میخوانی معنای منفعت برهنگ بنده ارزم کنم بعد اصطلاح شو کار میبریم رو خیلی این نفر هستش مثلا مستر هسته. فقط قبلش بینیم آقا ما نقل رو منفعت رو فقط داریم برای این معنی استفاده داریم و مرادمون از مسلحتم فقط این معنی یه مسلحت رو جایی که معنی مادی داره استفاده نمی کنیم مثلا جایی که اینجوری هستش این رو استفاده نمیکنیم. یعنی باید این مفهوم هر دشت منظم بشه که به اون به جای نرسه که اینا لازم ملزیم هم بیرسن من برداشتم همینه این صدا نیمون چه یا شد این مفهوم مثلت من برداشتم اینه که رنگ و لعاب منفی توش نیست هرچند این الان الان سه تا اشکاله این جملت آخر شما یه اشکال مستقل سب کنیم؟ کنی. ببینید اشکال اول چی شد این که چه لزومی داره منفض رو محدود به منافع مادی می توانیم اهم بگیریم میتوان مفهوم منفعت اهم از منافع دنیاوی و اخری باشه خب پاسخ ما چیه؟ این که مفهوم مثلحت اینطوری لحاظ نشده برخلاف چی؟ برخلاف منفعت منفعت میتوانه مثلحت آمیز باشه مقصد آمیز هم باشه دیگه ما آقا این سود داره. سود داره ولی سود دنیایی ولی این سود به رحم اینکه که سوده اما خ... مفسرده داشته باشه خدا این رو ثواب حساب نکنه مثل خود کلمه ثواب میگه میگم آقا دیگه ثواب خوب بود نداره خودش خوبه دیگه مصلحت یعنی خوب خوب مطلب حالا شما میتوانید به مقایسهش بکنید اشکاله دیگه بیا مشکلا جدا اما برداشت من اینه که مفهوم مصلحت دیگه, دیگه خوب... مشکل نداره کلا مگر یه حسی که دوباره برمی‌گرد اشکال دوم شما این بود که اینا تشکیکیان من خواهم باشم عرض می‌کنم باشه میتام پزیروف که در واقع اینا تشکیکیان روشن است که این دوتا تا تشکیکیان اما خلاصه تشکیک بودن مستلزم یک ثانیه اینا نیست شما از این خواستید اون موقع استفاده کن این دیگه بی پاسخ رو... من برای این پاسخ دادم که خلاصه این یه بحث دیگه است از تشکیکی بودن اون نکته قبلی استفاده نمیشه اشکال سوم که میشه فرض شما استفاده بکنیم اینه که مصلحت آقا اصلا خود مصلحت که شما میگید مثبت یه جایی به معنای منفعت دنیاوی هم به کار میره می تونه مفهوم مصلحت تو در منافع دنیوی هم به کار برد در نتیجه اینجوری شما بگیرید در نتیجه امکان در واقع،, در واقع این امکان وجود داره به وجود دنیا که شما که همانند مفهوم منفعت به اون مواجه بشید معنای خلاصه معنای مشابه منفعت پیدا کنه این اشکال بعدی این رو من به نظرم میرسه که ما قبول نکنیم به این صورت بگیم که اگرم به کار بردیم این شد معنای مجازی این معنای حقیقی نیست این کار برد واقعی نیست حقیقی نیست خلاص کاربرد مفهوم مصلحت در معنای حقیقی نیست و صرفاً جنبه در واقع کاربرد مجازی است. به نظر البته این پیش فرض اینه که در لغت عرب این گونه بوده در استعمالات فعلی نمی گیما ارزم این حالا باز می توانیم کنیم از شما من برداشتم دید که مفهوم مثلت مثبت کاملا اما یه اشکال دیگه شما مطرح کنید اون بگید که آقا در واقع بگید اشکال چهارم این گونه شکل بگیره مگه شما قبلن تو اون بحث قدیم نمیگفتید که مثلتو من مثلتو می مثلت من میتوانه من خالص باشه و ناخالص باشه مسائل و مفاسد توانند در دو شکل خلاصه تحقق پیدا کنند اون برخی از اونها به صورت خالص باشند برخی مسائل و مفاسد به صورت کاملا خالص تحقق پیدا میکنند اما برخی دیگه چی؟ اما برخی مسادی اونها ناخالصند یعنی چی ناخالصند؟ یعنی یه دیگه مسلحت یه دیگه مقصده پس شما که میگی آقا فقط مسلحت مف... در دو... مسلحت اینگونه است که با مقصد قاطعی نیست این چی میشه؟ اینم هم پاسخش رو میدم که اون در واقع در موارد ناخالصی بخش مصلحت همواره در واقع مستقل امکان دیدن داره در واقع قابلیت لحاظ مستقل دارد و به خودی خود, خود چه در ذات خود مصلحت است اما جمع مسلحت و مفسده هم امکان دارد همونطور که در واقع حکم براینده اینها میتوانه در واقع غالب باشه چونان که در مقام جل مسلحت غالب میتواند لحاظ شود یا مقصده غالب اینا میتوانن با هم باشن اما اون مصلحته سر جای خودش جمع اینا و مصلحت امکان داره اما اون مواردی که ناخالصه بخش مصلحتش به هر حال مصلحته در واقع ناخالصی مربوط هر جمعه به جمع مصلحت و مقصد است خود اون مصلحت مقصد بودن از مصلحت بودن نمیفته من در خدمت هستم اگر یکی دو دقیقه استراحت بفرمایید